ایران ویج. بازنگری در تاریخ قلمرو میانی یکی به خواستگاه شمال شرق معتقده برای اثبات ای که شمال شرق خواستگاهه نباید ما بگیم مردم جنوب فرات ایران همه بی تمدن و بدون لباس و بدون خط و همه چی بودن همه مدنگی ای که این رو بهتون گفتیم این پاچه سالش رو سوری شد. من بارها گفتم بازم بگیم در علم انسانی ما جای ها هیچ کدومش درست نیست ما هنوز پای شاعر نشستیم از رستن برمون بگی به صورت اصوله ای یا پای اصوله عدبیات بگی اینا مثلا کدوم نماد عرفان اینا هستن هنوز تو صد سال پیش یا دیوی سال پیش ایمون رو پایی ما مودی در که اصناد تاریخی میگن صد درصد این غلطه یا که اصلا اولین شایب مادنیست تو این همه سندی که همین سنده دور, دور اسلامی میشه بفهمین این جمعشت تو بابل چکا میکنه؟ خدا با ارز سلام و ادب خدمت همیهنان هم گرامی همراهان صدای امید به ویژه همراهان برنامه ایران ویژ میخواییم ادامه بدیم این برنامه رو بسیار ازخواهی میکنیم از شنوندگان گرامی به خاطر ای که از قسمت سی و دوم به این ور رخ داده ما قسمت سی و رو میخواییم در خدمت شما شنوندگان گرامی باشیم قبل از شروع قسمت سی 33 در مورد دو عزیزی که از این قسمت دیگه باهاشون نیستیم و در خدمتشون نیستیم متاسفانه توضیحاتی رو خدمت عزیزان عرض بکنم یکی از عزیزان خانم دکتر آزادی احسانی هستند که به خاطر انجام پروژه پایان نامه دکتریشون در حوزه ایران شناسی در کانادا مشغول هستند و به اضافه اون اشتغالایی که داشتند و هم مسائل تحصیلی، مسائل کاری و شخصی از ادامه حضور در برنامه اوزر خواستند و همچنین جناب آقای سعید کریمی به خاطر تدوین پایاننامه ارشدشون و همچنین تلاش و مطالعشون برای ورود به دوری دکتری و پی اچ دی از ادامه این برنامه اوزرخواهی کردند این دو عزیز خب سلمایی بودن برای این برنامه خصوصا در زبان زبانشناسی از شراوندگان گرامی هم اصخاهی کردند که دیگه از این قسمت در این برنامه حضور ندارند. ما تا قسمت سی و یعنی از قسمت یکم تا سی و دوم تقریبا نتونستیم مقدمات و اون بحث های و چارچوب نظری برنامه را تموم بکنیم بدیم معنی که آوردیم مسائل مختلف رو به بحث گذاشتیم دوره های تاریخی رو به بحث گذاشتیم تا اینکه به یه توافق نسبی برسیم در مورد اون نقاط تاریخی که قرار به همدیگه وصل بشه و ما بتونیم تاریخ جدید رو و همچنین دیرینگی تاریخ قلمرو میانی و به ویژه فلات ایران رو خدمت همراهان گرامی ارائه بکنیم از قسمت 33 مشخصا میخواییم وارد خود تاریخ بشیم و مشخصا پژوهشگرای این برنامه که مشخصا دو تا پژوهشگر دیگه باقی مونده جناب آقای مرتضاد ایران مرج جناب آقای سورنا فیروزی ازشون خواهیم خواست در مورد دوره های تاریخی نظر خودشون برداشت خودشون و فرضیه های خودشون رو مطرح بکنن و مشخصا ما از پژوهشگرا عدد خواهیم خواست مکان و زمان مشخص خواهیم خواست دیگه بر اساس اسناد بر اساس اسنادی که خودشون پژوهش کردن و برداشتی که از اون اسناد دارند ابتدا من از این پژوهشگران عزیز خواهش میکنم یه سلام مجددی روش خدمت شما عزیز داشته باشم تا اینکه سوالات رو مطرح کنیم شروع میکنیم از جناب آقای ایران مهر عزیز خیلی ممنونم درود به شنوندگان عزیز برنامه دوباره رغم بالا پایینایی که داشت بنا شد ادامه پیدا کنه ما با نبود دوتا همکارمون در زمینه بیز زبان شناسی حتما به چالش خواهیم خورد و خلایشون احساس خاطر امیدواریم که حالا با یک مقدار رویه برنامه رو دکتر مویبی توضیح دادن تفاوت خواهد کرد بدین معنی که دیگه خیلی دنبال توافق سر زمانیابی و مکانیابی نیستیم این طوری توافق شده که اون دورهای زمانی رو ما قصد داشتیم به صورت نقطه رو نوار تاریخی مشخص کنیم اینا رو به شکل جزیره در بیاریم این جزیره ها رو به هم بپیوندن و اون نوار رو به صورتی بزرگراه تو تاریخ رفته آمد کنیم. خب حالا بنا شده که دیگه برگردیم دوره ها روز گوی از آغاز. اونجا زمان مکانیابی مکان یابی و هر کسی بگه نظرشو تبیین کنه تا جایی که من متوجه شدم بعد از این این اینطوری باشه. بله دقیقاً حالا دیگه تا جایی که سند داریم و دوروبر میتونیم فراهم کنیم از پجوشا و استادایی که هستن در خدمتون هست. خواهش می‌کنم. جناب آقای فیروزی شما هم یک سلام علیکم بفرمایید و تحت بحثی که ما ادامه بدیم بس. و درود بر شنوندگان عزیز. من خیلی خوشحالم که رسیدیم بالاخره به این بحث اصلیمون که در تو با اون های فراموش شده کهن ایران هست و دیگه می‌تونه با سرعت به این موارد بپردوسیم. بله. خیلی متشکرم. ببینید در میان کلاً اصلا از اول برنامه ایران ویج خب دو تا گرایش وجود داشته حتی با حضور اون چهار نفرم این دو تا گرایش یعنی اون دو تا دوست عزیز همینجوری نیست که دو تا گرایش جداگانه داشته باشن چهار تا دو تا گرایش بوده یک گرایش که جناب جناواقا ایران مهر مطرح کردند که اساسا دوره هایی که در اسناد کههن ایران زمین بوده و به دست حکیم توس حکیم مبل قاسم فردوسی رسیده و تحت نام شخصیتایشون چون هوشنگ تهموره است جمشید یا آخر اینها یه ادهشون نماد دوره هستند و از خود آقای ایران مهر من نقل قول میکنم تا دوری فریدون ما با ایران شناسی کار با انسان شناسی کار داریم و مشخصا از دوری من و این بینور ما تاریخ ایران رو میشناسیم که مشخصا جناب آقای ایران مهر معتقدن که دوری کیومرس با دو معادلی دو که ایشون دارن، هایی که ایشون دارن، به احتمال زیاد 35 هزار سال پیش هست، سرمایه دوری سیامکی که در اسناد تاریخی است متعلق به دومین دور از آخرین یخبندان است یعنی 34 هزار سال پیش، سرمایی که جمشید از اون خبر میده متعلق به 17 هزار سال پیش و سرمایی که در دوره کی خسرو از اون یاد میشه متعلق به 12 هزار سال پیش است. از 12 هزار سال پیش بدینسو هم تقریبا میشه گفت که اکثر اون شخصیت هایی که هم در شاهنامه و هم در اسناد کهن تاریخی اومدن اصلا شخص بودن و حاکم بودن و شخصیت های حقیقی هستند و اون رنگ اسطوره‌ای دیگه ندارن در مقابل جناب آقای فیروزی بر اساس اسناد خصوصا اسناد دوره اندیشمندان اسلامی مثل ابونیهان بیرونی مثل محمد ابن جریر طبری مثل ابو حنیفه دینوری مثل ابن قطعیب. هم ابن قتیبه دینه ولی و هم ابو حنیفه دینی ابو وری صاحب اخبار توال و ابن قتیبه دینی ولی صاحب کتاب الاممات و سیاسه. کار نداریم به مثل. ولی ایشون معتقدند که تمام این شخصت شخصیت های حقیقی بودند و حتی در کتابی که دارند دیرینگی ایران یا خاندان های شده ایشون معتقدند که اینها شخصیت های تاریخی بودند و بر اساس یک پژوهشی که قبلا انجام دادن در مورد سال تولد زرتشت سپیدمان خب یک نوار تاریخی رو ایشون رسم کردند و یک چیزی حدود نه 9920 سال پیش دوریکی عمرس رو ایشون تخمین زدن یعنی از 9200 سال به این ور تقریبا از دوری که در دنیا شایع هست که انقلاب کشاوازی حدود 10 هزار 11000 یعنی از انقلاب کشاوازی بدین سو هستش که این شخصیت ها پشت سر هم اومدند و پادشاهی کردند و حکومت کردن در قسمت هایی از فلات ایران بزرگ یا کوچک و مشخصا در کتاب خودشون هم عمدتا دوره پیشدادیم و قسمتی از کیانیان رو مال دوره میدونند که دریاچه های مرکزی فلات ایران هنوز بودند و بعد از اون وقتی که خوشک میشه بقیه خواندان ها و حکومت ها هم میان البته ما بین این دو فرضیه خود بنده خود بنده کمترینم به یک فرضیه هم نسبتا رسیدم حالا بر اساس مطالعاتی که دارم اون رو در طول برنامه ها ارز خواهم کرد و دلایل خودم رو هم خواهم گفت تقریبا یه چیز ما بین این دوتا هستش ولی خب فعلا میخوام دو سه برنامه ای ما به قول معروف میگن یک نقطه اطفی بشه از قسمت 32 به قسمت 33 و ما وارد بحث‌های مشخص تاریخی بشیم من فیلن این فرزی رو مطرح نمی احتمالاً احتمالا در قسمت 35 یا 36 مطرح خواهم کرد به امید خدا و ابتدا از جناب آقای ایران مهر میخوام که مبانی نظری و هم مبانی مشخص تاریخی که ایشون در پژوهش‌هاشون هاشون رسیدند حالا بر اساس اون یافته هایی که دارن شروع کنن مطرح بکنن بعد برسیم به خدمت جناب آقای فیروزی هست خواهش میکنم خدمتتون بگم که این بحثشون منقطع شد دوباره چرخش باد راه با زدیرم مقدمه گویی داره تقریبا تو اوج بحث بودیم که نشسته سی به پایان است ببینید اون نوار تاریخی اون نقطه هایی که ما اصرار داشتیم باد روشن بشه یک مثال ساده بزنم شما زمانی که میخوانی یک سازه ای رو بنا کنین نخوست دیواراشو که نمیسازین. میکنین. بله و توی اون پی مهمترین کاری که انجام میشه مهندسا میان جای ستون رو با محاسبه تعیین میکنن یعنی شما اگه جای ستون رو درست محاسبه نکنین و اونجا قرار ندین بعد دیگه شما دیوار رو به بهترین شکل بسازین به زیباترین حالت بسازین فایده نداره بنا فرو می چون جای ستونکزه من بارها گفتم بازم میگم در علم انسانی ما جای این ستونها هیچ کدومش درست نیست اصلا دستکم تو بحث تاریخی که داریم بحث میکنیم حالا من مثلا فلسفه تاریخ هم خوندم اونجا هم همینطوریم اونجا هم پیروی مطلق غربیم در صورت که اصلا حواسمون نیست اینجا شرقه ما شرقی ها فلسفه خاص خودمون رو داریم اصلا متوجه این حرف نیست ببینید من بارها بازم گفتم اینجا هم گفتم ما دقیقا فیلم از وسطش میبینیم مبانیمون درست نیست همیشه بد جالبه برای اثبات حرفامون هم همیشه همون مبانی غلط رو مطرح میکنیم مثلا یکی همین بحث کچاری ها که اینجا زیاد مطرح شد اصلا این یک اصل فرض شده بقیه بر اساس این چینده شده حقیقی میپرسه یه سنداتون برای این چیه میگن تو سند چیه میگن آقا تو از یک ایمان مطلق داری به این کوچ و من که میگم ما امجا بودیم که من که نیاز نیست سند بیارم تو که میگه جای دیگه آمدیم؟ تو از من سند میخوای تو خودت اولین بار چه سندی بهت نشون دادن که اینا رو پذیرا هیچ چون از بچگی بزرگ شدی اینا رو شنیدی فکر میکنی اینا وحی منزله یا دربار این ماده ها فرض که فیروزی پجوش کردن اصلا ولی همه چیز مشخصه که دیاکو نخواستم شاه ماده در صورت که اسناد تاریخی میگن 100 درصد این غلطه دیا که اصلا اولین شاه ماد نیست قبلش هم ماد بوده و شاه دیگه ماد بودن اما ما اینو کاملا به عنوان یکی از ستونهای تاریخیمون در نظر میگیریم و به همه رو دود گرد این میچینیم خب معلومی بنا اینجور فکر اصنی در میاد دیگه یا شما فرض کنیم بحث که این اخیرم مطرح شده بود من تو این گروه ها دیدم بحث بود که نوروز ب... صحبت که های مرساد کرده بودن بحث این بود که نوروز از کیتوی بابلی گرفته شده یا کیتوی بابلی از نوروز گرفته شده بحث ها می‌کردن دلایل می اصلا پرسش من این بود که آقا مبناتون غلطه کی گفته بابل میان رودان و فلات ایران دو جای جدا از هم بودن که حالا شما دارین میگین این دوتا مگه دارین درباره آمریکای مرکزی و مثلا فرض کنین ایران بحث میکنین که اون اون ور کره زمین بوده این ور کره زمین کی از کی گرفته شما چه مرزی میانه میان رودان چه مرزی میانه بابل و شوش قایدین چه مرزی بیان میان رودان و فلات و ایران قایدین که میگین اونا یه جشنی داشتن ما از اونا گرفتیم یا ما یه جشن داشتیم این ها از اونها گرفتن تو این همه سندی که همین سندای دور اسلامی میشه بفهمین جمش تو بابل چیکار میکنه جای جدای خب میدونین این ها وقتی هم که حرف میزنی به بیسوادی مطرح میشه چرا چون با اون چیزایی که این پژوهشگرای دوره استعمار 300 ساله اروپایی گفتن یه دونه از حرفات جور در نیاد میگن تو بی سوادی میگم آقا من تمام آرای کریستنسن رو خوندم همه حرفای گیرشمن رو رفتم نگاه کردم میدونم چی گفته من با اسناد ملی ما جور در نمیاد با اسناد نوین نظب... اه... انسان شناسی جور در نمیاد حرفای آقای گیشمند با اسناد دیرین شناسی که به تازگی کار شده جور در نمیاد ما چه قولی دادیم به آوی گیشمن که تا 10000 سال دیگه هرچی گفت هم جو باشیم ببانی نظری رو بپذیریم هر من اینه اگه آوی گیشمن چیز درست گفته دست در نکنه اگه غلط گفته ما هیچ تعهدی نداریم تا آخر واسیم به پایین حرف این از این و ما درباره این برنامه که از دلایلی که این برنامه یک مدال عقیم مدتی مدتی ببینید ما ادله متناقض نباد بگیریم بنا شده که ما نیاز نیست روی یک بحثی به توافق برسیم خب اما من چیزی از شما میپرسم وقتی مطرح میشه که ببینید من به خاستگاه جنوبی معتقده اما تعالی از من شنیدیم بگم مثلا مردم نوار شمالی فلات ایران لخت بودند یا بیسواد سواد بودند یا بدوی بودند اصلا این وقتی که یکی به خاستگاه شمال شرق معتقده برای اثبات اینکه شمال شرق نبود ما بگیم مردم جنوب فلات ایران همه بی تمدن و بدون لباس و بدون خط و همه چی بودن خب وقتی من این رو پاسخ ندم وقتی رچیم شنونده میگه خب یاد قبول داشت این حرف رو دیگه درست. خب نمیشه پاسخ بدی میشه و... و... وزی که بود پاسخ ندیم خب یه چیزه یا مثلا من ایرادی که برنامه تمام شد در سی به خود آی فیروزی میخواستم اونجا بگیرم ببینین که دیگه برنامه تمام شد اصلا نشد بگیم خیلی کوتاه که. ما دوشن میگفتیم که آقا اسنادی که موجوده درباره کوچه دوران جمشید از آخرین یخفندان دارن همچین چیزایی رو اسناد دارند میگن ایرادی که آی فیروزی به ما گرفتن این بود که اصلا امکان نداره مردم از ascii 1000 سال پیش چیزی یادشونی مونده باشه و ثبت کرده باشه بعد در برنامه آخر که دیگه ما وقت پاسخگویی نشود خصوص معتقد بودن که بنا... مطرح کردن که فرگده کم وندیداد داره کوچه 35000 سال پیش رو گزارش میکنه میدونید این تناقض خب من ناچار میشم پاسخ بدم بعد تعارض پیش میاد و اصلا میدونید چیزایی که مطرح میکنیم خودمون باید کم بسنجیم که تناقض نداشته باشه حرفمون با هم اینی که من حتا قبول اگر اثبات بشه که فرگید یکم وندیداد اون داره مثلا کوچی رو حتی گزارش میکنه مال اصلا هرچیو گزارش مونه 85 هزار سال پیش من میگم احتمالاً ماها هنوز نمیفهمیم چرا این چطور سینه به سینه آباده. من قبول میکنم اما اینی که پشت سرش من بگم که داستان جمشید اومده تو اسناد ما از 8000 سال بعد گفته میشه نه امکان نداره کسی یادش باشه در صد 35000 سال میدونی این تناقضاست یا مثلا من یه چیزی که دلخرم می‌شدم این بود که ما من در مینوی خرد دوستان یه چیزی می‌خوندن برای اسفاط عرفا شد به من از که ما من مینوی خرد باز می‌کردیم می‌خوندیم می‌گفتن نه با یک سند بیخودی اصلا هیچ چی به درد نمی‌خوره خب حالا این چیزا یکم با دقت بشه دیگه وگرنه باز دوباره همین تناقضا پیش میاد و... امیدوارم در واقع آخرین گلهگی شما باشه دیگه از دور بعد وارد نتایج های خودتون نگفتم باید مقدمه گفته بشه که اینا هم جناب آقای فیروزی شما هم حالا معمولا خیلی به طول کلام خیلی تمایلی نداری و معمولاً خلاص گو هستید ولی خب جناب آقای فیروزی از اول هم مصر بودن که معمود از قبل از یخبندان به اون شکلی که در واقع دوستان دیگه مطرح کردن مدنیت به اون شکلی نبوده البته دوستان دیگه هم نمیگن که مثلا واقعا یه شهرنشینی خیلی ای بوده ولی خب یک فرهنگ و تمدنی بوده که در واقع بر اساس از زبان زبانشناسی و دیرین هواشناسی معتقدن که این دوره ها نماد یک سری تکاملی بوده که تحولاتی بوده که وجود داشته. ولی خب شما از اول هم مصر بودید که اینها شخصیت های مشخص تاریخی هستند و چون هم باستانشناسی خوندید و هم در واقع علم ژنتیک هم خوندید بر اساس اون فرضیتون رو با اینا پشتیبانی می کنید من از شما خواهش می کنم مثل جناب آقاییان مهری یک مقدمه ای رو بفرمایید تا اینکه ما دیگه از فکر کنم قسمت 34 بریم دیگه مسائل مشخص تاریخی. هر از خدمتون من میخوام فقط یک یادآوری کنم به این مطالعات قیاسی ده. که چرا من حرفم این هستش که این تاریخ کهان ما به صورت همین گزارش هایی از شخصیت های حقیقی و رقدات های حقیقی بوده نه نمادین صرف ببینید الان در یونان یه فردی به نسم اینا خوست بنیانگذار یک مملکت دولت شهریست که بعد یه حوضه مملکتی جنگه مثل ارگوس. یا آئه گیال... گیالوس این مثلا سیکون رو ساخته هر دو هزاره سو این هرداشون ن یک سکه پیدا شده نه یه خمره پیدا شده هیچی نه جاپاشون نه کاخشون هیچی ازشون پیدا نشده ولی اینها طبق اسناد مکتوب متاخر یونانی از نخستین پادشاهان جهان یونانی از هزاره سو. داخل 5 زمان بگم اتفاقا همین بحث دولت شهر یکی از پایه های فرضی خود بنده است که احتماان ق سی 5 مسی شما مترکن درخدمتان ببینید این فقط میگم یه اسمن ولی اینها در باستان شناسی و تایخ نگاری یونانی و حتی اروپایی کل اروپا اینا نخست جزء جز نخستین فرار روای یونان هستن و نه نماد اخلاق هن نه نماد عرفان هیچی حتما نبا از سکه پیدا میشه تو زمانی که، حضارشون باستان شناسی اسب... مدده که برای اثبات پیدا بشش نخستین شاهان مکتوب یونان ها. اساتیرشون چیان؟ هن؟ ها و افثانه هاشون داستان اشخبازی خدای جنگ آرس با خدای با الهه زیبایی مثلا آفرودیت این هم یه حالت دیگه اساتیر دارن میان میگن یه عرفهی بوده بهترین چنگ نواز دنیای هلنیک دنیای یونانی. این عرفه حقیقی زندگی داست زندگی استوری هم برای ساختن داستانی هم داریم از همین شخصهای عرفه استوری هم داریم جایی است که میخواد بره دنبال مشوقش یا زنش از دنیا مردگان این همون عرفه است و یه قطعا در دنیای کربونی و حقیقیش نرفه در دنیا مردگان با خدای چیز زیر دون... زمین و دنیای مردگانم بخواد پیمان ببنده این زنه رو بیاره بیرون یه داستان سازیه اینم یک حالت دیگه از اساطیر جهانیه که به عنوان اسوره تعریف می‌کنن تو دانشگاه ها ولی عرفای یهوی نذاشتن کنار دسته که از عرفام چنگیشم نمونده لباساشم نمونده قبرم نداره اصلا کجا هم بوده فقط یه م... متن مکتوب متخلف ازش تو داستان های مثلا یونانی ولی در ایران میان خیلی راحت حتی شخصی مثل جمشید رو که در گاتای زرتوش یسنهات 32 بند 8 وجود داره یعنی خود زرتوش اینه به عنوانی که آدم حقیقی قبل از خودش نام برده که کار انسانی هم انجام داره یعنی کرداری گناهی انجام داده کار زمینی اینو خیلی راحت میگن نماده مثلا هزار سال زندگی طلایی مثلا اقوام ایرانی و انیاکان ایرانی است حالا این زندگی طلایی کجا بوده ما نمیتونیم تو عصر یخ بندان پیش از یخ بندان چی پیدا این طلا پیدا کردن که فکر میکنه عصر طلایی بوده یه متن بهتون گفته دیگه همون متنی که اینو بهتون گفته میگن این پادشاه سالش شده و این قضایه ای که ما توش گیر کردیم ارز کردم چند تو برنامه های قبلی که اینها صد سال پیش هم برای چینی ها، هم برای یونانی ها، و هم برای مصر شناسا و هم بین و حل شده یعنی این سال های ما چجوری حل کنیم این داستان های از این شخصه به حل کنیم اینها ها سال باستان شناسی جهان ازش گذشته ما هنوز پای شاعر نشستیم از رفتن برمون بگی به صورت اسوره ای یا پای اوسرور ادبیات بگی اینا مثلا کدوم نماد عرفان اینا هستن و هنوز 200صد سال پیش و 20 سال پیشیم این اروپایی ما بوددی یعنی من یه نفر از اروپا زرج این داستانهایی که اون شیلیمان بود این آلمانی هموطنش مسخراش میکرد زرش اون کش و تموم کرد قضیه رو ثبات کرد که آلمیا اشتباه میکنن ما فکر کنم حالا اصللا از شیلیمان بدیم بیرون تا از این مسئله بهیم بیرون من چقدر این وقت دارم دو دقیقه دی. من ترجمه تو این دو دقیقه دو تا دیگه مثال بزنم که دوره بشه بله. یکی چینی هاست که من صحبت کردم ببینین چینی داستان آفرینش دادن یه انسان اولیه هست با اسم سخت پانکو پا این میان زمین رو شخ میزنه با اجدها و اینها چیز چیزو ایجاد میکنه نخواستين آفرینش و حیاتو ولی پشت سر این یه تعداد امپرا... فرمانروای عادی میان بعد دو تا سلسله دارن یه این سلسله هم قصای طلودراز این پیشدادی کیانیان ما یا این داستان های میارودانی یا داستان های یونانی اینا مسخره می شدن ولی حدود 1899 یعنی اول سده 20 باستانشناسی چین اثبات کرد که این سلسله دوم از نظر چیز قابل پیگیری است از نظر باستانشناسی متونو خوندن بازی و, و کشیدنش بیرون حتی متونه شد و اولیش هم اعتماد کرد رو دومی دو و گفتن که حالا که دومی دو اثبات شد اولی همچنان نقطه شو پیدا که این فقط کتیب نداریم منصوب هست به اون در واقع سلسله و کاملا تاریخ خود 1200 سال بردن رقبتر در چین بله. از 1000 پیش از میلاد رو 2000 پیش از میداد خیلی ناولگو هستن بله خیلی مترکنیم ولی جناب آقای فیروزی شما هم تصدیق میفرمایید که هم در باستان شناسی مصر و هم در باستان شناسی چین خب بله تاریخ رو که بودن به کهن‌تر و باقدم‌تر و خود شما با, با پژوهش خودتون خب تاریخی که ما توی دبیرستان‌ها توی دانشگاه ها ممون درس میدن حدود 2800 سال پیش از دیاکو رو میشه خب شما با این پژوهشتون بردین به 4200 4500 سال پیش درسته آیا در خب ما می‌بینیم توی چین و مصر هم که نهایتا به هزار 5 دیگه می‌بره دیگه از هزار 6م قبل که دیگه هزار سوم اصلا میرسه بله همون هزار پیش از میلاد مثلا هزار 5000 155... 5000 سال قبل اما تا قبل تر از اون دیگه سراغی نداریم و اون عزیزانی که با شما مخالفن نمیگن که مثلا اون مثلا توی 5000 6000 سال ای بوده تاریخ اسطوره ای رو معمولا اصلا به 10 هزار سال قبل تر از اون در واقع میگن میگن که در واقع ما تاریخ اتفاقا در این مورد تا حدودی با شما هم نظر هستن یعنی خودم هم هم نظر هستم با شما که معمولا تا از دوری فلزات به این از ,000, ,000 سال پیش هستش که ما مدنیت در واقع این مسئله ای که دیگه به اسطوره و نماد دوره اصلا نمیتونیم بگیم ما دیگه به گشت که گشتاست نمیتونیم بگیم نمادات با... گرچه خود که گشتاست حالا اصلا مال اصل فلزات هم نیست اصل نوسنگی هم هستش ولی اینجا منظور در واقع منظور از نماد دوره که ما میخوایم بگیم اه... میخوان اینو بگن که این اسناد تاریخی نماد دوره هایی بسیار کهنتر از اون در واقع تاریخی هستش که ما در تمام کشورها هم در واقع شناسایی شده و به رسمیت شناخته شده. فقط یه نکته بگم بدخلی. این مخالفت هایی به این صورت که این قبل از هزاره سوم و چهارم پیش از میلاد درک نمی‌کنن باستان شناسی آناتولیا کوچک حلش کرده. یعنی خیلی جالب مدیر گروهی که من جایی که تحصیل می‌کردم خودش پیش از تاریخ بود. ولی مثلا میگفتش که مگه میشه مثلا ما سکونتگاه و اوکران داشته باشیم مثلا هزاره هشتون خودش آدمی بود که تدریس میکرد مثلا این گوبکلی تپهی مثلا آسیه میاند آسیه یکوشک رو آسیه رو بله که دوازده هزار سال پیش معماری سنگی با نقش بردسته و باستانشناسی جهان رو تیرت انداخت بله خیلی متشکرم قسمت سی و سوم در اینجا به پایان میرسید